دیگر کوچکترین شکی در کار نبود این زن ای نداشت جز اینکه خودش روحش رو اوریان به من نشان دهد به انبار رفتم پرده را درآوردم به تالار بردم و مدتی در مقابل آن ایستادم تابلو دیگر برای من معنای مشخصی داشت کلید کشف و راز زندگی استاد ماکان بود دیگر از این چشمها ها باکی نداشتم فکر کردم که اصلا به خانه‌اش نروم. برای من مسلم بود اگر من نروم او خواهد آمد بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به اصرار او پی برده باز رأیم تغییر کرد مبادا از سلطه خارج شود مبادا پس از یک خواب راحت راده خودش را باز به دست آورد تصمیم گرفتم مقداری کتان به هم دوختم تابلو را درم پیچیدم کاغذ از انبار جمع کردم بار دیگر تابلو را کاغذ پیچ کردم با نخ لفاف را محکم بستم و تابلو را روی هر دو دست به سر گذاشتم و به دفتر رفتم. به تالار موزه برگشتم. نگاهی به جای خالی تابلو انداختم. چهاغ را خاموش کردم در را بستم و به دفتر آمدم. به دربان دستور دادم که برود و درشگی بیاورد برد. راه دیگری برای بردن تابلو نبود. در نمی نمیتوانستم بگذارم. بردن تابلو از مدرسه یک امر عادی بود بسیاری از شاگردان و معلمین کارهای خود را به خانه می بردند. کسی نمی توانست کوچکترین زنی به من ببرد. از فرط عصبانیت میلرزیدم هوا سرد بود و برف و باران نه چند روز اخیر داشی یخ اخ می میلرزیدم اما نه از فرط سرما. نه. گوی دارم جنایتی مرتکب می شوم. بهترین اثر بزرگترین ترین استاد ایران را داشتم از نس می دادم. آیا می ارزید؟ خودم نمیدانستم چه کار دارم میکنم تا اینجا نقشه مطابق میلم انجام شده بود اما از این به بعدش رو دیگر نخانده بودم چه کنم با این تابلو آیا واقعا تصمیم داشتم که پرده را در خانه این زن ناشناس که هویتش بر من معلوم نبود بگذارم فردا چه جواب بدهم به خودم چه بگویم به این لاشخورها که بنداز سر سوزنی به هنر استاد وقعی نمی گذاشتند. چه جواب بدهم به من چه خواهند گفت کم کم داشتم میفهمیدم که این زن مرا را هم تلست کرده واقعا کی تحت سلطه دیگری قرار گرفته بود من یا او آیا واقعا اشق و علاقه به بزرگواری استاد و نمودن اهمیت زندگانی دردناک و پر از تداش او من را وادار میکرد که نفهمیده و نسنجیده آبروی خود را بریزم و یا این این حرزه مرا هم از قفس زندگانی تنگم رو بوده بود. ساعت هشت شب بود. دم در مدرسه ایستاده بودم و ترسیدم که چگونه به روی دربان که با درشکه انتظارش رو داشتم بنگرم. از دور صدای پای اصفای درشکه روی یخ شکنده شنیده میشد. پشت به طرفی که با صدای, که صدای نل اصفا روی برف و یخ می کردم که دربان قیافم را نبیند. ماه با صورت دریده دیگر سری باقی نمی گذاشت. افق روشن بن زمین و خانه در سفیدی ماتی غرق بودند. اتومبیل ها بی بوغ بوق می‌زدند و شور و شر زندگانی را به رخ من می‌کشیدند. برای من دیگر راه برگشت وجود نداشت. شیطان در جلد من رفته بود. وقتی در آمد، خدافیی کردام و او گفتم امشب کمی دیرتر بخوابید. شاید همین شب تابلو را برگرداندم. در خیابان استانبول نور رنگ پریده چراخهای برق آسمان را تاریک تر جلوه می داد. سفید و کبود در آسمان پراکنده بودند و سوز سرد، سردی بینی و برگه گوش من را می خراشند. کلا هم را رو تا روی چشمانم کشیده بودم تا کسی مرا نشناسد. ساعت هشت شب بود و به آمد و شد جمعیت، چه بیخیال مردم در حرکت بودند چه خوشبخت بودند اتومبیلها مثل قرقی از چپ و از راست میگذاشتند بوق درشگه که در این وسط آهنگ ناجوری بود پشت سفارت انگلیس زنها عقب مشتری پرسه میزدند و فکولی ها دنبال می میدویدند یکی از آنها وقتی من را دید ایستاد و نگاهی به من انداخت به من سلام کرد و متلکی گفت دلم میخواست درشگچی تاخت میکرد. میخواستم زودتر به آن احتیاج داشتم در خانه زن ناشناس پیدا کنم. به درشگچی گفتم تون برو اینها ها هستند و اسباب عذیت من را فراهم میکنند. درشگچی پیرمرد از من با جرعت تر بود. سگ کی باشن مگه شهر هرته زمین یخ بسته ای تون تابرم اسباب لیز میخورن. من به حرفهای دوش که چی گوش نمیدادم خوره دودلی درون مرا میکاوید از کجا به پیروزی قطعی خودم میتوانم اطمینان داشته باشم نکند این زن هم یکی از آن زنهای جویی باشد که پس از شهریور کهابیش دیده شدند. شاید میخواهد مرا به دام اندازد و تابلو را از من بگیرد و شهوت پرستی خود را احصا کند تک کاغذی را که روی آن نشانی زن ناشناس را یادداشت کرده بودم درآورد مشاهده شده بود در پرتو یک چراغ سر یکی از ها آن را خواندم چشمم به اتومبیل آلبالوی رنگی که زن ناشناس با آن به مدرسه آمده بود خورد در, خ... در خانه را زدم زنی که پیشبند سفید بسته بود و لچک سفید بر سر داشت در را باز کرد گفتم خانوم بگویی که تابلو را آوردم زنک معتل نشد و گفت بفرمایید تو پول درشگیچی را دادم بالای تابره را به پیشانی و شانه هایم تکیه دادم و پایین آن را با هر دو دست گرفتم و وارد سرسرا شدم دخترک میخواست آن را از من بگیرد گفتم نه این کار شما نیست بگویید کجا ببرم بفرمایید تو خانم در اتاق خودشان نشستند نمیخوایید پاتویتان را بکنید فوری دریافتم که در یک خانه اعیانی هستم حال بسیار زیبا بود. میز گرد کوتایی در وسط اتاق قرار داشت روی آن کاسه از بلور تراش گذاشته شده بود و در آن گل میخک جلوه میفروخت که از سخف خوشرنگ آویزان بود تمام حال را روشن میکرد یک گلدان بزرگ نخ در گوشه قرار داشت تابره را به میز کوتاه تکیه دادم دخترک پالتو و کلاه من را گرفت نگاهی به اطراف خود انداختم همه چیز در نظرم جالب و با سلیقه مینمود. احساس کردم در این محیط غریبه هستم. خود را حقیر و بیچاره یافتم و وحشت کردم. نکند که این زن در این خانه در محیط خودش بر من غلبه کند. در مدرسه من صاحب خانه و فرمانروا بودم، اما اینجا همه چیز با نظر حقارت به من نگاه می کرد. چشمم نمی با گلان، تراش و چلچراغ و دیوارهای خوشتنگ و قالی خوشنگار عادت بگیرد. من تمام اساسی مدرسه را می شناسم. از تاریخچه وجود آنها با خبرم؟ سالها آنجا زندگی کردم. تمام تابلوهای آن را با دست خود لمس کردم. اما آنجا در این خانه پشتوک و جلال دستوپای خود را گم کردم. خدمت کار گفت بفرمایید آقا در اتاقی را باز کرد. فرنگیز روی صندلی راحتی نشسته بود. لباس سبزه تنچست می پوشیده بود. جوان ترجل بمی کرد. صورت نیکه او مرا به حال آورد. قرور گرفته من جان گرفت. بیان که به بزن ناشناس کنم به خدمکار گفتم شما تابلا را بردارید بیاورید توی اتاق. اما آموازد باشید به در و دیوار نخورد. وقتی کلفت خواست آن را بلند کند گفتم نه نه اینجور نمی شود و اش را بگیرید. بلند حرف می زدم که فرنگیس را متوجه خود کنم. چند ثانیه بخانده روزامه که در دستاش ادامه داد. به شدینه صدای من از جا بلند شد. مجبور شد تا دم در اتاق به پیشواز من بیاید. دنبال خدمتکار پالتوی دوده دست مانند کسی که به آمده شد در این گونه خانه عادت دارد وارد اتاق شدم. سری به خانم تکان دادم و با چشم مراقب بودم کلفت تابلو را کجا می گذارد. اما تابلو بزرگی که به دیوار مقابل آویزان بود جلب توجه کرد. این منظره جماران که به دیوار آویزان بود حتما کار استاد بود. زیرا من چند ترها آن را دیده بودم و مدتها عقب خود تابلو میگشتم. وقتی آن را در اتاق زن ناشناس دیدم دلم قرص شد. دیگر با این همه قراره نمیشد شک کرد که این زن استاد را نمیشناخته است. همین که خدمت کار تابلو را به زمین تکیه داد به طرفش رفتم. آن را از دستش گرفتم و گفتم بسیار خوب من خودم بازش میکنم. گل فداش از اتاق خارج میشد که فرنگیس عآمرانه گفت سکینه صبح کن چه میل داشتید آقا می دارید یک گیلاس کنیاک به شما بدهم با این لحن معدا و مهربان منتها ساختگی خنده شاد و دلگشاد همراه بود اگر این زن باز بخواهد مرا بفریود باید اینجور رفتار کند. دیگر اینطور نمیتوانم دوام بیاورم خوب میداند که من به چه قصدی اینجا آمدم میدند که اقلا یک ساعت هم شده باید مطیه من باشد و نگفتنی ها را بگوید با وجود این با همان که انگام ورود به دفتر با من صحبت میکرد میگفت میخواهد گفتگو کند رو کردم به کلفت و گفتم مرسی من چیزی نمیخواهم صورت فنگیست از بیان تند و خشن من سرخ شد جرأت نکردم به چشمهش نگاه کنم از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت پرسید پس اجازه بفرمایید بیاید و تابلو را باز کند خیر خانوم، این خدمت را به من واگذار کنید استدعا میکنم کلفتتان را مرخص بفرمایید با سر اشارهای به سکینه کرد و او رفت بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم و روی صندلی راحتی که درست مقابل فرنگیس بود نشستم فرنگیس کمی مکس کرد بعد آمد نشست یکی دو دقیقه سکوت برقرار بود صدای عبور اتومبیل و درشگه و حتی رهگذران شنیده میشد بعد او خسلش سر رفت نمیخواهید تابلو رو به من نشان دهید تابلو رو به این قصد آوردم که به شما نشان بدهم اول باید معامله انجام بگیرد گفتم که حاضرم هرچقدر پول بخواهید بدهم خدمتتان ارز کردم که من حاضر نیستم شرافت خدا به این ارزانی بفروشم به علاوه اگر بخوایید با همون لحنی که با من حرف میزنید که به نظر ساختگی و دروغی است فوری تابلو را برمیدارم و میروم من آمدم اینجا با شما صمیمانه و صادقانه صحبت کنم خانم ببخشید اسم شما را هنوز نمیدانم شما را فرنگیز خطاب میکنن به من قول دادید هرچه بخواهم به من بدهید چه میخ شما باید آنچه به هیچ کس نداده اید به من بدهید یعنی چه؟ اگر توضیح بخواهید مجبورم اول مقدمه ای بگویم تا مقصودم را بهتر بفهمید من اگر از شما صداقت و صمیمیت میخواهم باید خودم با شما صادق و می باشم تصور نکنید که من امشب با شما آشنا شدم ده سال است که من این تابدار را که الان در اتاق شماست هر روز میبینم بنابراین ده سال است که من شما را میشناسم